اوزو بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الله بالله لعیل عظیم و سلال الله على سیدنا محمد و الا اهل بيته تیبین الطاهرین الهدات المهدیدین المنتجبین سیما بقیت الله ف السماوات و نارزین اوزو بالله من الشيطان الرجيم و لو کانت الانبیاء اهل قوت لا ترام و لا تزام و تمد تومد نحوه اعناق الرجال و تشد الیه اقدر رهان لکان ذالک احوان على الخلق الاعتبار توفیق بسیار بزرگیست که بحمد الله در این مناسبت بهرمندیم از فیوزات سخنان زلال و دلنشین مولانا و مختدانا امیر المؤمنین و بهره میبریم از کلمات نورانی حضرت در خطبه قاسعی نحجر بناقه خطبه که بارها گفتیم و دیدیم و ملاحظه فرمودید که محوریت اون با شناخت شیطان دامها و دردهایی که از ناحیه او متوجه انسان میشود با اون که مربوط به شیطان سفتان، اطباع و اصحاب شیطان است به این قسمت از کلام رسیدیم که امیر فرمود خداوند سبحان پیامبران الهی را با زر و زور مجهزشون نکرد سرمایی که انبیاء الهی داشتند آن بود که ولکن الله صبحانه جعل رسله علی قوت فی عذا امهم خداوند این پیامبرانخیش رو دارای عزم پولادین و اراده مستحکمی در وجود و جهانشون قرار داد اینها نفوس مستحکم و توانمند و پرزرفیتی داشتند. جانه های پرورده به لطفه الهی و ضعفتن فی ماترالعیون من حالاتهم اما در ظاهر اینها اد و اد نداشتن نداشتند، بیا الهی مَا قَنَاعَتِنْ و الْقُلُوبَ وَلَعُيُقْنَقِنًا اما هران چه بخواهید قناعت و اون جانهای کریم نفسهای پاکیزه و ای که بینیاز و مستقنی از اون چیزهاست که اهل دنیای شیطان زده لحظه به لحظه برای اون جان میدهند و حرس آن وجودشون رو مملوف میکند و از هیچ چیزی دریغ نمی کنند برای رسیدن به چنین متا آخاسته هایی و خصاصت و ابسار والاسماع اما به ظاهر نیاز و حاجت بشری دارند اما آن چنان قناع در وجود اینها و عزت در وجود این هاست که بیمثاد و بیبدیل است. تا اینجا گفتیم خدمت دوستان عزیز ادامه همین بحث رو وجود اون که امام پیگیری می‌فرمایند. خدمت بزرگواران اشاره میکنم فقط یه نکته که استهزار دارید کل این مطلب تابع اون بحثی بود که امام دیروز گشود که بدانید خداوند سبحان اعتبار خودش رو عیارگیری خودش رو در میان بندگانش با زر و زور قرار نمیدهد این دو عاملی است که نخوت و قرور و کبر شیطانی رو در وجود انسان جاد ایجاد میکند اینها ملاک و شاخصه امتیاز انسان ها نیست لذا پیامبران الهی با این معیارها پیامبر نشدند با این ویژگی ها انتخاب نشدند در نزد حضرت باری تعالی و نشدند اصفه های مطرح شده یا از سوی پروردگار در میان جامعه بشری بلکه ملاک همان بود که گفتیم قسمت های قبلی اون رو و الان هم ادامه بحث رو پیگیری می و خداوند برای اینکه غرور را و نخوت را و که رو در وجود انسان ها بشکنه ابتلاعات خاص خودش رو در زندگی دنیا برای فرزندان آدم مقرر می فرماید. فرمود و نوکانت الانبیان اهل قوت لا ترام اگر بیانبران الهی اهل قوته و نیرو و تمانمندی هایی بودن که لا ترام کلمه لا ترامو از رام رامیه رومو به معنای قصده به معنای قصده, قصده یقصد و طلبه یطلبه. اگر پیامبران الهی اهل قوهی بودند که لا تقصد لا تطلب قابل دسترسی و قابل رسیدن نمی بود. یعنی اینها یه توانایی نیروها امکانات ظاهری فوق تصور انسان ها می که مجذوب می و خیره می‌کرد همگان را و عز لاتوزام و عزتی داشتند و اینها یه و پیروزی و قدرتی داشتن در ظاهر که هرگز قابل شکست و قابل زبان نبود کلمه لاتوزام زیم به معنای خفت و ذلت شکست یه گروهی بودند اینها در میان جاهلیت عرب که هیچ ذلت نمیپذیرفتند اینها گروهی بودند که تصمیمشون برون بود که خفت و ذلت رو قبول نکنن جوانمردان ویژه‌ای بودند در تاریخ عرب اوباوت و زیم من جمله نبی مکرم اسلام قبل از بعثت در دوران جوانی اوباوت و زیم اینها کسانی بودند که حلف الفضول ها رو پیمان بستن یعنی متحد بودند که خفت و ذلت رو از کسی نپذیرن با عزت و سربلندی زندگی کنند و عزتن لا تزام اگر انبیاء الهی عزت و یه قلب و پیروزی می داشتند که هرگز ضلت و شکست در آن وارد نمیشد و ملک تومد و اعناق الرجال رجال و اگر پیامبران الهی ملکی می داشتند یه ملک شوکت ظاهری یه قدرت ظاهری یه حکمرانی فرمانروایی روایی می داشتند که تمد و اعناق و رجال. که به سوی اون گردن انسان‌ها کشیده میشد. خب وقتی شما می‌بینید مثال از می‌کنم خیلی ساده و عرفی یه ماشینی رو بعضی‌ها می‌بینن سرشون بر می‌گرددن اما تو میرن تا پیچ خیابان که این ماشین محو بشه چون اولین بار تو شهر اصفهانی ماشین رو دیدن یه چیزی رو می‌بینن مثلا بالاخره ادا جلوی رو شکوهی رو یه ساختمان رو چیز سرشون تو میچرخه نگاه می‌کنن و می‌بینن این میشه همین تعبیر حضرت و ملکند تمد بهو اعناق و رجال اگر احیانا پیامبران الهی ملک و ثروتی میداشتن فرمان روایی و حکمرانی میداشتن که چنین گردنها رو میکشید و خیره میکرد و توشد الیه علیه رحال این تابیر, تابیر فوق فوقلاده دلنشین عدیبانه است عزیزان توشد و رحال اگر پیامبران الهی موقعیت، ثروت فرمان می‌داشتند می که شد رحال می‌شد شد به سویان در کلام عرب این استلاحه انگامی که بار شطر رو می بار مرکب رو می برای آن که به سوی و مقصدی حرکت کنند شد رحال می‌گفتند. گفتند تو شد و علیه اگر به گونه اینی که آنقدر جاذبه در کار اینها می بود که مردم شد رحال می یعنی همه مشتاقانه به سوی اینها حرکت می کردند و عظیمت می به سوی اینها که مند از موقعیت و شرایط اینها باشند لکان و نه، الان خنق فل اعتبار خوب دقت بفرمایید چی فرمودن تا اینجا اگر پیانبران الهی یه قوت و نیروی می داشتن در ظاهر یه عزتی می داشتن یه ملکی می داشتن یه قدرتی می داشتن این شرایط ظاهری پیامبر یه ملکی می بود یه صاحب سروتی می بود یه صاحب قدرتی می بود اسلام مثلا انبیاء الهی لکان ظالکه احل و خلق فل اعتبار. این برای مردم در اینکه بخواهند به سوی اینها جذب بشن و اونگاه آزمونشون رو و شخصیت هویت خودشون رو نشان بدن خیلی آسانتر بود چرا؟ دیروز اون سب رو خدمت دوستان عزیز خواندیم خدمت بزرگواران خاصیت مادی و نفس انسان این چنین است که به جذبه فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا يقرنكم بالله الخالقور این جاذبه ها انسان رو میکشند عزیزان این جاذبه ها انسان رو میکشه خیلی جالب است اجازه هم من یه داخل پرانتز خارج از خطبه عرض کنم خدمت عزیزان خداوند ما را برای دنیا آفریده است یعنی در دنیا آفریده شدیم با با دنیا زندگی کنیم از همین دنیا سرمایه بگیریم و آنگاه سیر خودمون نمیشه دنیا رو دور زد واقع تو همین دنیا گذار کنیم هیچ چاره ای نیست من لا معاشله لا معادله معاش نداشته باشیم معاد نداریم عزیزان بدون بروبرگرد اما از یه این دنیا هم واقعا جذابه واقعا زیبایی هاش چش پرکنه است لذت های اون ذهن و خیال انسان رو متحوش می کند به خود محف می کند جذب می کند و متوقف میکنه انسان رو از اون مقصد و مسیر چه باید کرد نه ما گریزی از این دنیا داریم و در این حال این قوت و این سرپنجه توانمند زیبایی ها و نیازهای دنیا و شهوات دنیا ها آدمی رو میخکوب میکند متوقفش میکنه از مسیر اینجا ادیان الهی من جمعه قرآن و اسلام دو رفتار رو پیش گرفتن یه کار علمی میکنن یه کار عملی یعنی میان اول دیدگاه شما رو نسبت به دنیا اصلاح میکنن که بدونید این دنیا بله تجلیگه خود کرد خدا دیده ی ما را در این دیده دراویید و ببینید خدا را ما تمام این زمین رو زینت کردیم تمام اون آراستگی و زینت جذبه دارد واقعا انسان رو مبروت میکند متوش میکند خیلی اوقات وقتی این زیبایی ها رو میبیند از همه جنس و دست اون گفتن اما تمام این زیبایی ها تمام این جاذبه ها که میبینید خلقتم للبقائلا للفنا شما برای دوام آفریده شدید نه برای این سراچه سپنج فانی بدونید شما از عابران این وادی و این مسیر هستید نه ساکنان این منزل از دنیا ممركم و لاخرته مغركم فخذوا من ممركم لمقركم دنیا ممر شماست آخرت مقرر شماست پس بدانید که از این ممر و گذرگاه و معبر می‌روید تا به مقصد و منزل برسید به صدها شیوه زیبا اومدن این علم و این آگاهی رو به ما دادن که دنیا ابزار است برای رسیدن شما به منزل مسیر است منزل نیست ابزار است هدف نیست آگاهی لازم رو دادن دوم یک کارهایی به ما آموزش دادند عملا که این جاذبه های دنیا ما را نگیرد حالا یه سری اعمال عبادی یه سری اعمال اقتصادی یعنی شما هنگامی که میستید در این چند نوبت رو روبه پیشگاه ذات باری تالا صبحگاهان، ظهر، عصر مقرب، اشهاب تعبیر خودمون وقتی میستید دستتون رو میشویید از دنیا جهتتون رو انتخاب میکنید غیر دنیا قیامتون رو در پیشگاه خداوند نه برای امور دنیوی پیشانی بر خاک میگذارید، که خاندیم به تمام وجود ذلت رو نشان می دهید قامت تا می کنید. به خاک می رفتید. وقتی تمام این کارها رو چندین بار در روز داریم انجام میدیم، مثل اینکه داره خداوند ما رو از این جذبه به جازبه دیگری می کشد و سوق می دهد. یه ماه را در مجموعه دوازده ماه ضروری ترین نیازه های دنیا که بالاخره مایه ایش آدمی شکم است. گر به تدریج می روید چه غم است؟ می بندید دهان را اللهم ملک سمتون و علاوه رزق کفترت ضروری ترین نیازها خوردن نوشیدن باشرات جنسی رو یک ماه به احترام او با اون شیوهی که فرموده است به کناری میگذارید یعنی شما تمرین میکنید برون آمدن از جاذبه های دنیا را چند خوردی چرب و شیرین از تا. امتحان کن امتحان کن چند روزی در سیاهم میکشید میچش و اون چه امیر ان به مناسبت فرمایشون در مورد حج میگن اونم همینجrandn میخونیم خدمت دوستان یه تمرین هایی به ما دادن که اگر اون علم و این عمل بیاید بعد میدونید ما چی میشیم میشید و عباد الرحمن بندگان خداون کسانی هستن که یمشو نہل الا عرضه اینا ارتباطشون با دنیا همون میشه مشیشون علل ارض میشه نفل ارض فرو نمیرن اینها علل ارض گذار میکنند و اون خواسته ای که خداوند میخواهد در جمع بین دنیا و آخرت دست میده برای انسان توجه دارید حالا امیرالمومنین میفهمان اگر انبیاء الهی این جاذبه های دنیا جاذبه شخصیتیشون میشد مردم خب ساده‌تر به دلیل همین فریفتگی و ارز به خدمتون زیبایی ها که داره زود جذب به هم بیا می شدن اگر امتیاز مالی پخش میکردن. میگفتن هر کسی که بیاید و ایمان بیارد ما یک برج این بهش میدیم. اگر کسی بیاید و ایمان بیارد ما ده تا زیبا رو بهش میدیم. اگر هر کسی بیاید و ایمان بیارد ما چنین موقعیتی رو بهش میدیم. اگر پیامبران الهی و چه ارتباطشون با خلق این امورات میشد. امام می که لکان زاده که احوان حلال خفل اعتباری خیلی ساده می برای اعتبار رو به هک و, و ابعدالهم فل استکبار دیگه مردم مقابل انبیا گردن کشی نمیکردند استکبار نمی در پذیرش آنه پذیرش زود می چون چی بود؟ بالاخره منافعشون تأمین می شد مثلا این چیزها براشون ملموس و خیلی ارز به خدمتون با لذت و منو ولا آمنو، ان رهبهن لهم و اگر انبیا اهل توپ و تانگ بودند اینها اهل اون بودند که اسلحه رو بگیرن مقابل انسان ها و اینها رو در یه فشاری قرار بدن که هیچ چاره جز ایمان نداشته باشند امیر میفهمود مردم ایمان می آوردند به این زور اسلحه و اختناق اما لا ان رهبتهن از ترس از خوف آهرتن لهم که بر اینها قالت و قاهر بود او رغبتن ما علتن یا میل هایی که دلشون لک میزد بر اون امتیازاتی که میخوان بهشون بدننان تو دنیاشون دنیاشونو اینگونه آبادان کنن بعد فکانت نیات و مشترکه دیگه نیت های انسان ها مشرکانه میشد برای خدا نبود برای ایمان نبود و و مختصمه دیگه این رفتارها و حسنات و شای... رفتارهای شایسته اینا تقسیم می شد هر چیزی برای یه چیزی می شد دیگه برای آنچه چه خداوند می خواهد و هدف آمدن ادیان الهی کشیدن و رساندن و بردن انسان به قرب جوار الهی متخلق به اخلاق الهی شدن به مقام خلاف... خلافت الهی رسیدن دیگه هیچ معنا نداشت حالا ولکن الله ولکن الله سبحانهو التفات بفرمایید ولکن الله سبحانهو ارادن یکون لعتباع و لرسله و تصدیق و به کتبه ول خشوع و لوجهه ول استکانت و لعمره ول استسلام و لطاعته پنجت ایمان می اما خداوند اراده کرد که این پنج که کنان دوباره میگم، اینها امورن خاصه. اینها فقط خالصاً لله باشد و الا نتیجه از این امور حاصل نمیشوند این نمیشه و این دست نمیده مگر با شکستن کبر در وجود انسان یعنی تا زمانی که آدمی همون سامل را عزیزان همون سعامل رو برگردیم به همون سنقطه‌ای که گفتیم تمام به نوعی توانمندی شیطان تو این سه نکته خودشونشان میدهد که برحسد تمع بله به دنبال این قذب و غیره اما عمده این سه اگر غیر از این میبود این سه آمن نمیگذاشت چیزی محقق شود به نام دین به نام فضیلت به نام شرافت به نام تقوی امیر المومنی خون فرمود خداوند اراده کرد ان اتباع الاتباع و در تبعیت از رسولان دوباره به این پنج نکته التفات بفرمایید تبعیت از رسولان بارها این رو من مطرح کردم خدمت دوستان اطاعت تبعیت اطاعت پذیرش است ممکنه قولی باشه سمن ان بتعاطن چرش میشه لیدی متین اما تبعیت نه طبعیت یعنی چی؟ اون شب در مباعث کف میگفتیم بحث تابه و طبعیت رو در ادبیات گفتیم یعنی پی چیزی رو به این اون گرفتن و حرکت کردن قلن کنتم تحبون الله فتبعونی عشق خدا دارین مردم بیا تابه من پیام براشد چیزی فراتر از اطاعت فرمود انیکون الاتباع اول رسوله از رسولان و تصدیق به کتبه و تصدیق پذیرش کامل و ایمان به کتب الهی یعنی کتب منزله خداوند تورات انجیل در جای خود بقینه کتب آسمانی و قرآن و ایمان و تصدیق به کتب و خشوع الوجه سوم خداوند اراده کرد تبعیت از رسولان تصدیق به کتب و خوشو اینها رو خیلی گفتیم خدمت دوستان اما چون لازم اینجا عرض می کنم فقط صریحا ببینید اگر کسی در ظاهر فروتنی نشان میدهد ممکن این در باطن نباشد نام این خضوع است اگر کسی یه فروتنی داره که از درون نشأت میگیرد ممکن در ظاهر هم دیده بشه نام این خشوع است خشوع اون فروتنی است که از کجا شروع میشه از جان و دل روح انسان رو پر میکند فرمود ول خشوع و و خداوند اراده کرد خشوع برای ذات باری تعالی ول استکانت ل استکانت تزلل سرفرود آوردن به جان وجد جد متواضعانه پذیرفتن و استکانت برای امر الهی ول استسلام لطاعته و تسلیم لطاعت خداوند شدن این پنج مسئله رو خدا اراده کرد امورن لهو خواسته هیچ ای برای رسیدن به این پنج امر جز خداوند نمیتواند باشد امورن لهو خواسته خداوند اینها رو یه اموری خواست که فقط برای او باشد و ما عمرو الا الله مخلصی للا هدیم مخلصین اله دین اخلاص کامل برای اون あの لله برای خداست دین خالص برای خداست بدون این شاعبه ها انگیزه های دیگر که این انگیزه ها از کجا می آید از کبر میآید از حسد میآید از حرص میآید خلوص دین یه حرکتی است دقیقاً سربرخورده با این این سآمل رو میزنه کنار بعد دین خالص میشه اگر در ذهن و فکر دیندار که بر بیاید حسد بیاید تمع بیاید به همون نسبت چگالی دینش میاد پایین و خلوصش کم میشه در درصد خلوصش اگر به اونجا برسد ازیزان خداوندین تفضل رو به بنده و جنابالی بکند به مؤمنین بکند به پیروان و کلام و کتابش بکند که احساس کنید که به اناویت خداوند کبری نیست در وجودتان اگر به جایی برسد که ببینید اون چه خدا به بندگانش میده شما رو خوشحالتر میکند از آنچه چه به خودتون بدهد و اگر به جایی برسد که ببینید هیچ نیازی ندارید جز به حضرت خودش اما به که بیارز و اگر مرحمت کنم اون که از قلم رو به امکانم آورذوست بدونید دین شما خالصه خالصه خالص خالص خالص 100 درصد است رسیدید به اونجا که علال الله الدین خالص آفت خلوص دین س عامل فرمود امور انه خاصه که لا تشوبها من غیرها شاعبه خداوند این ها را خواست است که امور خالص باشد لا تشوب شعوب به معنای خلط به معنای مزج لا تشوب ها من ها شاعبه خدا خواست است هیچی داخل این نشه هیچ از این پس نخالصی ها نیاید و کلما حالا امیر الممن برکه نشون بده نه این قضیه ساده ای نیست که انسان بتواند از این امور کبر انسان به مظاهر دنیاوی زرزور علم این مفاخرها حسد انسان به مظاهر دنیاوی تمه انسان به مظاهر دنیاوی اه همین ها چه داریم میگیم التفات میفرمایید گزار از این ها اینی که انسان بتواند پاسخ این سنکتر رو بدهد و محکم کوبنده و قوی مقابل شیطان بایستد اصلا حالا همان همانگونه که میگفتیم شیطان به مسلمان کنه تسلیم دست خودش بکند این کار آسانی نیست اما شما حد کجا رفت کنید؟ شما نظرتون این است که یه بلندی های اطراف نمیدانم برید از این کوه صفه بالایی نمیدانم یه بلندی های ترکست؟ یا یعنی نظرتون هست برید دنا برید زردکو نظرتون هست کجا برید؟ الوند برید یا دماوند میخواید به پنجزار افصد برسید بام ایران برسید دهی ای دیو سپید پای دربند دهی غله گیتیه دماوند یا هممتون بالاتر است. میخوایید برید به ایورست هیمالیا اون کوهنوردی که میخواد اورست رو فتح کنه یا تمرینش به مقدار تمرین ماست که 100 متر، 200 متر، پونصد متر هزار بریم نفس منونچنان بند بیاد که همونجا با برانکارد به بیمارستان ما رو ببرند چقدر آمادگی داره کسی که میخواد بر بام جهان هش هزار خوردهی بره بالا از اون بالا این زمین رو ببیند و اون گله رو فتح کند این چقدر داره؟ ای ورزشکار میخواد تو شهر اصفهان به رتبه ای برسد میخواد تو کشور جمهوری اسلام ایران به رتبه برسه میخواد تو قاره آسیا اول بشه میخواد در المپیک اول بشه این چقدر باید تمرین کنه؟ هر که بامش بیش برفش بیشتر هر کسی که جای بالاتری میخواهد پس طبعا ابتلاو بیشتر دوشواری بیشتر و سختی بیشتر و خلوص بیشتری رو هم تو کار وجودش باید ایجاد کنند و ما کانت البلوا و اختبار و اعظم سلطن که یا قبل حسن یا امیر المؤمنی و ما کانت البلوا و اختبار و اعظم کانت المثوبت و الجزا و حالا هر مقدانی که انسان بلوا بیشتر تکابوی تکاپوی بیشتر احتباه رو محک زدن، سخت گیری و دبت ها. اب نداره بزید من بگم این تمثیلات رو کمک میکنه بیشتر. این کوره تختیر رو دیدید. ها اون سطح پایینش ماضود میخواند دریارن یه قدری میاد بالاتر میخوان گازویل دریارن یه قدری بالاتر میخواد بیاد میخوااند نمیدارم نفت در یان یه قدری بالاتر میخواد بنزین در بیاد یه قدری بالاتر میخواد بنزون سوپر با نمیدانم آکتان رو چند در بیاد بنزین سپر در بیاد هرچی بالاتر می رود این کوره تختیر فشاری که وارد میشه حرارتی که وارد میشه چی میشه افزوده میشه افزوده میشه افسوده میشه می می می تا می رسد اون بنزین ناب قیمت اون چطور؟ عملکرد اون چطور؟ انرژی که راهها می کند چطور؟ این است. این قسه وجودی ماست هر چند ایزان این کوره زندگی تیر ما شدت بیشتری کند. زرافت بیشتری پیدا کند که به کوچکترین اعمالتون تو زندگی انگوش بگذاری زردبین رو بردارید آیا سلامم کلامم رفتارم ادبم برخوردم زنم بچم زندگیم تمام شعوناتتون رو کاملا ریزبینانه به دبقت نگاه کنید به تعبیر آمیانه مور از ماس بکشیم متبخش هاش بگذاریم به تمام ابعاد زندگی منسرک بکشیم ها سب نفسه تمام این محاسبه ها مراقبه ها مشاورته ها تمام این ها رو به کار ببندید هی hey, خلوص چی میاد؟ بالا بالاتر و ما کان البلوه و الاختبار العظم کانت المثوبه و الجزا اجزد بعد هی hey, بالاتر هی hey, بالاتر به جایی میرسد که یا ایتو هل نفس مطمئنه ارجعیه الارب که راضیتا مرزیه میشه اون نفس مطمئنه چقدر زیبا امیرالمومنین این نقشه راه رو مطرح می‌کنه به ما علائم جاده رسیدن به اون اوج رو پیش روی ما نشون می‌دهت وجود از حضرت خب مثل اینکه این قصه خیلی مورد نیاز ماست امام با بیه گفت به آداب شریعت و دینداری گفت به خلوص در دین فرمود شزاوت باری حالا این گونه قرار داده است یعنی اساسا بستر دین برای تم تمحیز باز هم مثال این کوره بلند زباهن اسباه هم بالاخره تمحیص میکنه تخلیص این اسطلاح تخلیص رو تو صنعت خیلی بکاریم با خلوص چند با خلوص چند تخلیص رو زیاد بکار میبرید این نمیدم این صورب چطور این چطور. خداوند بستر دین رو فضا و شرایط تخلیص قرار داده عزیزان برای ما این خلوص رو بالا میبرد خلوص رو بالا میبرد این طلا میشه چهارده، هیجده 20 بیس. بیست, بیست میشه دست از مثل وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیایش به آبی یا زر شد بشه زرگ 24 وجود انسان به اون زیبایی و شکوه برسد امین المؤمنین هنوز این رو داره نهان دین رو فرمود انبیار رو فرمود میفهمد که ببینین خدا چگونه خواسته است این خلوص شما رو از چه بر حسد تمع، قذب و تمام این دام‌های شیطان بالا ببرد به سازوکارهای متفاوتی من جمله این سازوکار زبان که الان میفرماید حالا الان ترون عن الله سبحانه اخبر الاولین ملت ادم سلامات الله علیه الا آخرین من هازل عالم خیلی این قسمت کلام امام عجیبه دقت بفرمایید تعمل کردید که خداوند صبحانه و اختبر ال اولین آزمود از اولین از آدم ملدون آدم از نزد خدا آدم از زمان آدم ال آخرین آخرین یعنی از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی محمد و از پیامبر تا انقراز عالم خوب دقت کنید این بازه زمانی از کی شروع شوند از آدم تا کجا تا آخرین تا انقراز زمین اینها را آزمود به چی آزمود به احجار به یا سنگ های لا تضر ولا تنفع یه سنگ هایی که خود این سنگ نزیانی دارد برای کسی نه سودی دارد نه حاجتی می نه مشکلی دوام می کند نه مطلبی می کند و لا تبس رو و لا به یه سنگ هایی که این سنگ ها نمی و نه حرف میزنن با کسی بعد این سنگ ها چی شد خداوند مردم رو به این سنگ ها از آدم تا انتها آزمود فجعلا ها بیت حرام خدا این سنگ ها رو اسمش رو چی گذاشت کعبه بیت هل حرام خداوند این سنگ های سخت ساده بیخاسیت را اسم اون رو کعبه گذاشت گفت جهالالله الكعب تلبیت الحرام قیامن ناز خداوند از آدم تا انقراز آدم فرمایش امام نشان میدد اجتناد به همون آیه شریفه است که این اول بیت وزهد ناز للذيب مكه مباركه اولین خانه عبادی و عبادتگاه بشر روی زمین کعبه بوده است از عزیزان طبقای مبارکه اوران و فرمایش امام مشخص دیگه اولین مرکز عبادی و خانه عبادی بوده است که به نام اون توسط آدم نهاده شد ابراهیم بانی کعبه نیست مجدد نه این یرفع و ابراهیم و اسماعیل و قواعد منال بیت اینها قواعدی که خراب شده بود دیوارها رو بالا بردن نه اینکه پیش بر دارن قبلا کار انجام شده بود تخریب شد ابراهیم می کند مجدد توجه فرمودی و فرمایش امام نشان میدهد که در جهان بانگ عزان بوده است و هست حشمت اسلامیان بوده است و هست شمس دین احمدی توبنده است در جهان الله و اکبر زنده است. نشان می دهد تا زمانی که زمین باشد اطراف این کعبه انسان می و می گرده ندارد این متاف این 27 را همیشه آبادان بوده است و خواهد بود فرمود خداوند مردم را آزمود امارات کعبه را نگاه کنید چی داره چه ای و زیبایی داره کعبه سنگ های خشن زمخت چه سازهی داره کعبه چه زیبایی داره چه شکوهی داره کعبه هیچی نداره از جهت ظاهری امارت هیست که اصلا هیچ جلوهی هی نداره ساختمان ای دارد مساله خاصی دارد هیچ کدام. خود کعبه حالا همین هم که ما اضافه می کنیم. یعنی همینم که ها کسبت الکعبه پرده کعبه درب کعبه اینا هم چیزی نیست اینا که محاسب فرمایده می دانم با های سپید و زرد و سرخ و فلان و چی و چی چیزی, چیزی نداره که اصلا این کعبه امیر المومنین فرمود فجعلها بیت حرام. همین بنای ساده سنگی رو خداوند چی قرار داد بیت حرام. خانه محترم. خودش قرار داد انذی جعله له للناس قياما این خانه‌ای که موجب قیام مردم شد آیه شریفه رو ازت می‌فرمان قیام ما یقوم و به اون عامل استادگی و پابرجایی یعنی عاملی شد که انسان رو زنده کند انسان رو با پابرجا کند قیام فرد قیام جمع خود حضرت در اون خطبه نحجل بلاغه در اون وسایهاشون نامه چهل فرمودند بدونید الله الله فی بیت رب بکن شما را مسلمون ها به خانه خدا توصیه می کنند. اگر کعبه رها شود اسلام راها می شود لمت و نازرو یعنی قیام اسلام به قیام کعبه است حالا فرد رو بگید چقدر می شناسید دوستان عزیز عزیزان افرادی که رفتن کعبه برگشتن قیام کردن آدم شدن زندگیشون عوض شد وجودشون عوض شد یه عجر رفتن یه عمره رفتن دیگه اون انسان قبلی نیستن چی شد خدا چی کار کرد با اینها تو اون فضا چه قیامی به اینها داد چه شعوری به اینها منتقل شد در اون فضا با همین سنگی که امام دارن میفرمایند. فرماین فجعله بیت ها الهرام لذی جعله لناس قیاما سم وزعهون به او عرب قائل ارض حجرا خداوند این کعبه این سنگ بی ارزش رو کجا قرار داد حالا در چه جغرافیایی بعد اینا رو میخونیم ان شاء فردا آیا کعبه رو خدا برد در یه خط و جغرافیایی که همیشه بهار است خوش آب و هوا زیبا مناظر طبیعی فولاده دل و دلنشین که مردم دلشون لک میزند که آن با آن برن بی تو مناظر طبیعی زیبا و کهبر رو تماشا کنند. آیا که چنارهای نمی دانم جزایر غناری خدا قرار داد، نمی دانم سواحل هوایی قرار داد، نمی دانم بفرمایید کدوم منطق قرار داد خدا این کهبرا. فظاظه او به او عرب قائل هر زه عر در یه جایی که ساخته سنج ها را دارد. س از خطوم ارز میدونید زمین چعب سختیش چیه سختترین گسل جغرافیایی زمین سر زمین است در ژولوژی و زمین شناسی این بحث شده. و همین خاطر مطمئنترین گسل زلزل پذیر نیست. و من دخله کان آمنا، امنیت ظاهری دارد و امنیت، معنوی دارد وزعهو به آو اره به قائل ارزه هجرن در یه سرزمین این کعبه رو قرار داد خانه خودش رو که سخت های سنگ های سخت آو ار عر و اره به معنای سختی و زمختی و اقل نتائق دنیا مدرن و این کعبه رو در جایی قرار داد که از جهت نتاق نتاق یعنی سمره و نتاج امرهتون منتاقه یعنی زنی که خیلی ولود، خیلی بچه میاره و اقل نتهایق دنیا مدرن مدر یعنی چی؟ ریگ ریگو همیشه در جایی قرار داد در سرزمینی قرار داد که ریگزار بی و بی خاصیت رب نی از کنت و منظریتی به وعد غیر زیزار اندبیت ابراهیم اون روز گفت خدا یا من این حاجر و اسمایل رو میگذرم اینجا کنار این خانه ای تو در سرزمینی که هیچی نداره هیچ چی نداره نه قابلیت دارد نه قابلیت دامداری داره هیچ چی نداره این سرزیم و از یقبتون لعودی قطرن و خداوند این خانه شو در جایی قرار داد نیومد این اصطلاحی که حالا نمیخوایم کلمات رو کار بریم خلاصه در این جایی قرار نداد که چشمندازش این چنین باشد نمیدانم زواهرشون چنان باشد از یقبو تونل عودی قطرن در یه جایی قرار داد که زیغترین درها و تنگناها را دارد و مشاهده می دیگه با وضعیت فعلی و این تونل ها و مدام در حال چند این جماعت الان در حال کندن و کاویدن تراشیدن و کوبیدن این سخوه ها و این های با این ریشههایی های این چنینی که بر اون امارات و اونچنانی الان ساخته بشه و از یقبو تونل عودی قطرن بین جبال خشنه کوهای خشن شما ریشه های رو الان دارید میبینید یک کوه سفارو مرورم یک تیکشو گذاشتن میبینید جنس اینها رو مقایسه فراموید با کوهای شهر اسوان با کوسنگی مشهد که کوسنگیست مقایسه فراموید با اینها نوع این کانی رو ببینید اصلاً و بین جبال خشنه و رمال دسمه کوهاش این بیابانش هم بین رمال دمثه دمثه به منای نمر نرمیه و اویون و شله ببینید خاک نرمی که گیاه در رو ریشه نمیگیرد این رو میگن و رمال دمثه و اویون و شله آبهایی که آب نیست هست خشک یک سرزمین خشن بی سمر بی آب و قرن منقطع نیست اصلا باید چقدر بروی تا شاید واهی باشه چار تا نخلی باشه یا نباشه بدوی بنشینند یا ننشیند لا یزکو به ها خفون ولا و لا زلفون سرزمینی که در اون لا یزکو یزکو زکا یزکو منای چیست نما مو. به منای رشد بالش سرزمینی که درون اصلا روش نمیکنه خف خف یعنی شطور به دلیل وضعیت پای کف پای شطور بهش میگن خف و لا هافر به اصل میگن هافر چون وقتی پاش میگذاره زمین چکار میکنه حفر میکند فرو میره اون سم قوی دیگه سود سم سطوران در این پهنه زمین شد شش آسمان گشت هشت به اصل میگن هافر زلف به قنم میگن به بزغوسوند میگن سرزمینی که در آن هیچ استعداد دامپروری نیست نه شتر نه اسب نه گوسفند حالا خدا این سنگا رو اینجا گفت رو هم کردن تو این بیابان این چنینی اما ثم امره بعد امر کرد و ازن فناس بلحج یاتو کرجالان و علو کل ذمرن یاتین من کل فجن امیه اعلام با هنگ به زنبرای، بگو گویی خانه من اینجاست. منو میخواین بیان کنار این سنگا منو میخواین بیان تو این سرزمین، بیان تو این وادی. آب هوا این چنین، وضعیت جغرافیایی این چنین. سم عمر امر آدم عليه السلام و وولده دستور داد آدم و بنی آدم و شما را و فرزندان آدم را أن یصنو اعطافهم نهوه خیلی بنیادی دارن حضرت مطرح میکنن خیلی ریشهای داره مطرح میشه بحث نداریم واقعا اصلا نداریم در متون اسلامی این طور امید این بحث رو مطرح کردن خداوند امر کرد که ان یفنو اعتافه هم نهوه فنی کنن بچرخانن تا دادن رو میگن سن گرداندن رو میگن سن بگردانن عطف سمت و سوی خودشون رو یعنی روی خودشون رو به طرف چی کنند به طرف همین سنگ ها کنن به طرف همین خانه کنن فظلو وجوه هکم شطره هر کجا که هستن روشون رو به طرف این خانه کنند بشه چیشون قبلشون بشه یعنی قبولشون پیش روی این ها همیشه باشد همیشه به طرف اون بیزدن قرار داد که این و به سوی اون حرکت کنن ایفنو اعتافهم نهوه فسار مسابتن لمنتج اسفارهم و خداون و از جلن البیت مثابتن لناسه و امنا و اتخذوا من مقام ابراهيم و, و خداوند قرار داد این خانه را محل آمد و شد منتجع یعنی جایی که میرن دنبال یه منافع بره منافع چی میرن نه آب داره نه هوا داره نه زیبایی داره نه شی گرانقدری که میرن ببینن از جهت باستانی میخوان برن ببیننش اما نشستید اینجا منده دارم این مطالب حضرت رو میگم اونهایی که رفتید الان دلتون خوشتون، روحتون داره تقاق میکنه داره میچرخه. شوت اولتون، شوت دومتون، شوت سومه. اونهایی که نرفتید داره دلتون پر میزند روحتون پر میزند خدایم میشه منم دور به چرخم. خدا میشه منم سرازیر بشم از اون وادی، بگم لبیک الل اللهم لبیک، لا شریک لک لبیک. میشه منم برم تو اون وادی. الان داره دلهاتون پر میکشه، میره. فرمود فساره مسعبه تا منتجع اصفار همله یش منافع لهم میرن اونجا من چه منفعتی چی شد این منافع رو بگیرن حالا دقت کنید بازم و هم لمل قاره حالهم قایت و منتهای رحل و کاروانشون قرار میده که دیگه آرزو این که برند و برند و برند و برسن آقا این نبوده که شما فرودگاه شهید بهشتی رضوان الله تعالی علی اصفهان سوار هواپیما بشید کمر رو ببندید بعد به شما مهماندار بگویند که عرض به خدمت چنین و فاصله تا مقصد فلان فرودگاه مدینه بیایید از اونجا ساکتون برداریم ببرن براتون بزاران به هتل آقا در بیابان گربشنگ کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها و گر کند خار مغیلان بوده یعنی این وقتایی در تاریخ داریم آمار و اینها یک چهارم حاجیان که به حج می رفتن به خانه هاشون بر سه چهارم بین راه میمردن در این سفر می اگر کسی واجب قتل بشه بهتر از این که واجب هج بشه همچین حجی بوده که مردم دلشون لک میزده نه امکانات شرایطن و هیلتون مدینه و نمی عرض به خدمتون مکه و کذا و کذا انترکونتینات نه نه این دلها برای عالت برای همون رمل ها برای همون صخره ها برای همون سختی ها چی کرده خدا با روح بشر با جان و وجود انسان فرمود دقایتن لهمل غاره ها دهیم تهوی علیه سما رو لعفعده و خدا کشید دلها را و دلها میل کرد به سوی همین سرزمین فمار و لفعده اون اوج و سنره وجود ها و جانها من مفازن قفارن سهیقه با تمام سختی ها از بیابان های دشوار کوبنده و محاوی فجاجن امیقه پردگاه های امیق عرض کردن با اون سختی ها رفتند و رفتند و رفتند تا این خانه آبادان بماند و جزائر بهار منقطعه از مناطق مختلف حتی جزائر و بخش های جدا با دریایی زمینی راهشان رو چشیدند و آمدند حالا میرسیم به اون جهان مطلب خدا این رو این فضا رو این طور قرار داد این میل رو در وجود قرار داد که مردم چکار کنن یه هز هم تا به شدت به خودشون فشار بیارن حض به معنای تکان دادن. مناصب شانه ها به شدت تکان بدن خودشون رو بشتابن بیان به سوی این سرزمین بعد ذللن ذللن لله حوله با ذلت با تواضع میگن آقا برو جماعتو بکن کی شما رئیسی وزیری شما پروفسوری شما کارگری شما سرمایداری شما عالمی درویش غنی بنده این خاک درن، اعلم العلماء بلدی، بزرگ دین جمهور کجایی؟ برو جامعه بکن. برو اریان شو. برو این دو جامه رو به تند بکنید تا کلباس رو که مخیت هم نباشد. سوزن هم با نخورده باشد. خط به با اون نخورده باشد. تمام اعتباراتو بذار کنار تمام قرودتو بشکن. همام تو از دنیا خلاصه کن به تا که پارچه. نگاه کنی اطرافیان چیزی ندارن که بهشون حسد داشته باشی. آری میشی از چه برای؟ تمه حسد. حالا بیای این جامعه رو بتن کن برو. چکار کن؟ برو از این بادی با این شیبه برو. حالا رسیدی به این خانه. حالا شروع کن به چرخ. حالا به چرخ. حالا به چرخ. با این ادب بچر. سرتو نپیچون شاناتو اینطور نکن این گونه بچه. چشم تموم شد برو پشت اونجا بهیست. در پس این سنگ دو رکعت نماز بگذار تموم شد برو از صفا شروع کن از هم شروع نکنی ها از صفا شروع کن بدو بدو برگرد هر کن به سوت اصول این که رسیدی هر کن. خب بریز خودت هر چ تو وجود تخفیه دیگه اون ذرات باقی مانده یک هر و حسد و رو هم از خودت فرو خالی شو تو هیچ ان الصفا ولرمه ان شاء الله و من حج ال بیت فلا جناح علیه ان تطوف بهما الله برو تو آوش شکر خدا بند صفات برو مرمت برو آرا برو بگذار همه چی تو برو وون بیابان چی داری هیچ، برو برفات نه امکاناتی نه ابزاری به شکل جدی تا دم خروب به اینست بعد برو مستقیم به مشهر احساس کن که رفتی جان دادی جنازتو دارن میبرن به مشعر حالا این مشعر هیچی نداری نه خانه، نه جا، نه خیمه، نه مکان تمام قرورتو بشکر اذکر الله، اندل مشعر الحرام فقط او، اذکر الله، فقط یاد او باشه. هیچی برات نمونه دیگه، هیچی نداشته باشی تو این مشعر، تو این محل شعور وقوفت رو کردی، واقف به اسرار خلقت شدی، از خودت برون آمدی حالا برو شعورت رو کامل کن. برو تو مشعر، به به شعورت. الله اکبر. حرفی هم نباشه. حالا برو. دمدم صبح زودترم نه منتظر باش طلوع را. انگا حالا حرکت کنه. عفیزو منهیز افاز الناس. برو تو این اقیانوس بیکران مردم خودتو رو گم کن. برو گم شو برو مخفی بشو برو محف شو در این دریا حالا پاتو تو تو این سرزمینی که میخوایی معنی کنی دیگه هرچی هم دیگه مونده بریزی دیگه میخوای جانت رو بریزی میخوای قربانت رو بریزی میخوای خون بریزی برو دیگه من کن اینجا الله عجب تموم شد کارت انجام دادی این روز حالا برو بنشین یه حلاغه رو بکشت این تیغ رو بکش بک چه میکنه خدا با این عمل از اگر کسی به روح این عمل بره هیچی از ان باقی نمی ماه هیچی باقی نمی مونه یعنی وقتی این انسان از حج برگرده البته به حملله حالا اون اوجش که بماند. شما هم خداتون از ایزان خودتون می بینید از حج که برمیگردن به چهره هاششون نگاه میکنید خدا میدونه اصلا عوض شدن یه نوری تو وجودشونه حالا این انشاءالله ادامه پیدا میکند دقیقا یکی دو ماهی هست حرف زدنشون کلامشون چهرهشون میبینید متفاوت از قبل باز قبارهای دنیا کبرها و حسدها و تمام ها مجدد نزدیک میشه حمله میکنه شیطان تا اینا چقدر خودشون رو قدیه کرده باشن چه میفرماده میرونمون مثلا لح میکنه انسان رو میبرد تمام این باد رو و نخفت رو همین سنگ بیارزش همین مراسمی که یو هرولون هرولتن به تعبیر از رد زلولن یو حللون لله خوله اینا احلال میکنن لا اله الا الله وحده هم وحده لا شریع کله یرملون علا اقدامه هم رمل میکنن رمل همون حالت رمل همون حالت هروله شعصا قبرا شعص جولیده قبر قبار گرفته دیگه اینجا تمام زیبایی به کنار میره دیگه نه آینه می نگرند نه می شانه می دیگه با این حالت شؤسن قبرن لا قد نبزو سرابیل ورا از هور هم دیگه وقت گذشت قد نبزو سرابیل و از هور هم جامه ها و لباس ها انداختن به کنار شوهو بعفا اشور دیگه به زیبایی ظاهرشون نرسیدند محاسن خلق هم زیبایی ول کردن ابتلاو ان عجب محکی داره خدا می زند و امتحانن، ان شدید چه ایارگیری شدیدی می کند چه آزمون و برون می کشد استعداد را آشکار و تمحیس ان داره تمحیس می چی؟ تخلیص می کنه, می کنه ها کبرها زر زر داره میره چیزی نمیماند جعلاله الله سببن رحمت خدا این رو اسباب چی قرار داد بارش رحمت خیش و وصلتن الی جنت به این رو پل وصول به جنت خیش قرار داد هنوز زیبانی های این بحث مونده است که خب به حال یه نوبت بیش نداریم و ان الله فردام انصر مبارک دوستان بخش دیگری که امکان گفتن آن باشد محصر تون تقدیم می شود خدایا به عظمتت به بزرگیت طعم آن چرا در سخن امیرالمؤمنین دیدیم به ما بچشان ما را بهرهمند از حج و از صلات و بهرمند از تمام زیبایی های خلقی که وجود انسان را از خود عاری می کند و به تو متصل می کند پررگها را تمعم آن را به ما بچشان.